ای سبا نکهتی از خاک ره یار بیا ببرن دوه دل و مجده دلدار بیا نکتهی رو فضا از دهن دوست بگو نامهی خوشخبر از عالم اسرار بیا تا معتر کنم از لطف نسیم تو مشام شمی از نفهات نفس یار بیا به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز بی غباری که پدیداید از اغیار بیا گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب بهر آسایش این دیده خونبار بیار خامی و ساده دلید شیوه جان بازان نیست خبری از بر آن دلبر ایار بیا شکر آن را که تو در اشرتی مرغ چمن به اسیران قفس مجده‌ی گلزار بیا کام جان ترخ شد از صبر که کردم بی‌دوز اشوه‌ی ز لب شیرین شکربار بیا است که دل چهره مقصود ندی ساغیا آن قده آین کردار بیا دلق حافظ به چهر زد به میش رنگین کن وان وانگهش مست و خراب از سر بازار بیا